شب نهم هنگام غروب چند نفر از آقایان اهل سنت به محضر جناب واعظ آمدند و اظهار داشتند که حق بر آنان واضح و آشکار شده و می‌خواهند در این جلسه علناً اظهار تشیع کنند جناب واعظ از آقایان تقاضا کرد که فعلا ساکت باشند و عقیده باطنی خود را برملا نسازند تا مجلس به پایان برسد بعد از ادای فریزه آقایان علما تشریف آوردند و مجلس حالت رسمی یافت طرف صحبت جناب شیخ عبدالسلام بود چون جناب حافظ از سخنان شب گذشته بسیار ناراحت و متأثر بود و رقبتی به شرکت در مباحثه نداشت در طول چند شب گذشته جناباری از اعمال و کردار اهل سنت گله کردید و حالا نوبت ماست که از شما شیعیان گله کنیم. شیعیان مرتکب اعمال و زشتی می شوند که هیچ مجوز شرعی ندارد به عنوان نمونه، فهاشی نسبت به حرم رسول خدا، ام المومنین آیشه که یکی از کارهای بسیار زشتی که شما می کنید. آیا نسبت فهاشی و بدکارگی به آیش دادن در حکم توهین به رسول خدا نیست؟ قبول ندارید که در سوره نور خداوند متعال میفرماید زنان بدکار شایسته مردان بدکار و مردان ناپاک شایسته زنان ناپاک هستند؟ شیعه هرگز نسبت بدکارگی به آیش نمی اگر تفاصیل شیعه را نگاه کنید متوجه می شوید که شیعیان در موضوع افک از آیشه دفاع می کنند و او را مبرا از فخشا می دانند. در مذهب ما نسبت بدکارگی به هر مسلمانی حرام است چه برسد به همسران رسول خدا. اما معنای شریفه سوره نور این نیست که اگر یکی از زوجین بد باشد، پس حتما دیگری هم بد است و اگر یکی خوب باشد دیگری هم خوب است چون در قرآن مجید سریحا در مورد نوح و لوت و فرعون عکس این قضیه را نقل می‌فرماید. در قرآن کریم زن نوح و زن لوت به علت خیانت آن دو به شوهرانشان مورد نکوهش قرار گرفتند عجیب است از یک طرف نسبت فحشا به هر مسلمان را حرام می‌دانید. و از طرف دیگر زنهای نوح و لوت را خیانتکار می نامید. بین فحشا و خیانت تفاوت زیادی هست. زنان انبیا از فحشا دورند، لیکن زن نوح و زن لوط به تسریح قرآن خائن به شوهر بودند. اما منظور از خیانت تمرد از عوامر و فرمان شوهر بوده. اگر ما از آیش انتقاد میکنیم به این خاطر است که از دستورات همسر بزرگوارش سرپیچی میکرد و کارهای انجام میداد که تاریخ زندگیش را لکهدار کرده. خودتان انصاف دهید آقا. آیا درست است به ام المومنین چون این نسبتی را بدهید؟ این سخن من نیست بلکه گفته علمای اهل سنت است. کارهای زشت چه کسی مخفی مانده که انتظار دارید؟ کارهای زشت او مخفی بماند لابدت مخالفتی که با علی کرده خوردهگیری میکنی اولا اگر از نظر شما جنگ با علی خوردهگیری است از لحاظ خداوند متعال اینگونه نیست ثانیا لکدار بودن زندگی آیشه به زمان حیات رسول خدا برمیگردد چرا که او همیشه آن حضرت را آزار میداد. چگونه به خود جرعت می دهید که به امول مومنین افترا بزنید مسلما آیش این آیه قرآن را میدانست که آنان که خدا و رسول را عذیت می کنند همانا خدا در دنیا و آخرت آنها را لعن کرده و برای آنان عذابی با ذلت و خاری مهیا فرموده است. پس چگونه ممکن است که آیش رسول خدا را عذیت و آزار برساند؟ بله این آیه را علاوه بر آیشه بسیاری از صحابه هم دیده بودند و با این وجود موجب آزار پیامبر خدا می شدند. به عنوان مثال این جریان را بشنوید روزی ابو به ملاقات دخترش آیشه رفته بود بین حضرت رسول و آیشه کدورتی پیش آمده بود که آیشه ابوبکر را به قضاوت طلبید و در هنگام سخن گفتن کلمات توهینامی را نسبت به رسول خدا میگفت. طرز تکلم آیشه بر ابوبکر گران آمد و سیلی محکمی بر صورت دخترش کوبید آنچنان که خون بر لباس آیش سرازیر شد. در جای دیگر همین زن به رسول خدا گفت توی آن کس که گمان می کنی پیام بر خدا هستی؟ بزرگترین گناه آیش سرپیچی و از فرمان الهی و اقدام به جنگ و خونگریزی علیه امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. خداوند متعال خطاب به زنان پیامبر میفرماید و غیر فی بیوت نه ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولى. این فرمان را تمام زنان پیامبر اطاعت کردند الا دختر ابوبکر که برخلاف دستور خدا و برخلاف فرمان رسول خدا به همراهی تله و زبیر علیه حکومت اسلامی قیام کرده و به بسره رفت و دستور داد که موهای سر و صورت عثمان ابن حنیف که از بزرگان صحابه و والی بسره بود را کنده و اخراجش کنند. خود او بر شطوری که با پوست پلنگ پوشیده شده بود سوار شد و به جنگ خدا و پیامبر و امام زمانش رفت. آیا؟ نشنیده که از رسول خدا روایت شده که ای علی دوستی تو ایمان و دشمنی با تو نفاق است. اول کسی که وارد بهشت می شود توی و اول کسی که وارد دوزخ می شود دشمن توست. آیا او نمیدانست دانست که پیامبر مکررن می فرمود علی را دوست نمیدارد، الا مؤمن و او را دشمن نمیدارد، الا کافر؟ و علی بهترین افراد بشر است و هر که در این مورد شک کند کافر است این قبیل اخبار اختصاص به علی ندارد و مشابه آن در مورد بقیه خلفا نیز روایت شده اگرچه این صحبت شما هیچ ربطی به این بحث ندارد ولی باز هم حاضرم یکی از این روایات را بشنوم عبد الرحمن بن مالک از جابر نقل میکند که رسول خدا فرمود هیچ مؤمنی ابوبکر و عمر را دشمن نمیدارد و هیچ منافقی آن دو را دوست نمی دارد اگرچه استناد به احادیث یک طرفه جزء قرارداد مباحثه ما نیست ولی با این حال اگر این حدیث از نظر علمای خودتان معتبر می بود می توانستیم آن بحث کنیم. آقا مثل شما قصد دارید به هر حدیثی که ما می توهین کنید. پس از این چند جلسه‌ای که با هم بودیم خودتان فهمیدید که من اهل تهمت زدن و توهین کردن به احدی نبوده و نیستم. زهبی و خطیب بغدادی در مورد عبدالرحمن ابن مالک چنین نوشتند که او فردی کذاب، دروغگو و جعل کننده بوده. آیا به روایتی که از چنین فردی نقل شده میتوان اعتنا کرد؟ بیایید از ابوذر حدیث بشنوید که مورد اعتماد همه امت اسلام است. او میگوید ما افراد منافق را در زمان رسول خدا با سه علامت شناسایی میکردیم. تکذیب خدا و رسول تخلف از نماز و دشمنی با علی. اکنون خبر جالب دیگری به خاطرم رسید که از خود آیشه نقل شده. او میگوید رسول خدا فرمود خداوند متعال با من عهد نبود که هر که بر علی خروج کند کافر است و جایگاه او آتش دوزخ خواهد بود. انگانی که بر آیشه اشکال می که چرا با وجود شنیدن این حدیث باز هم بر علی خروج کردی میگفت. این حدیث را در روز جمل فراموش کرده بودم تا اینکه در بصره یادم آمد. بسیار خوب آقا با توجه به همین سخن آیشه او تبرئه می شود چرا که انسان جایز است. حرف شما در صورت صحیح است که او در این گفته صادق باشد. اما تاریخ نشان می‌دهد که او در اینجا هم غیر صادقانه حرف زد. هنگامی که به قصد خروج از مکه را داشت بسیاری از اصحاب و هم زنان رسول خدا زشتی این کار او را گوشزد و احادیث نبوی را به یاد او میآوردند. اما او باز هم به راه خود ادامه داد تا به بسره رسید پیامبر خدا به آیشه فرموده بوده ای آیشه به از اینکه در راهی باشی که سگهای هواعب بر تو پارس کنند هنگامی که در راه بسره به منطقه هواعب رسید سگها اطراف محمل او را گرفته و پارس میکردند. سوال کرد اینجا کجاست؟ گفتند هواب. به یاد گفتار پیامبر افتاد ولی باز هم به راه خود ادامه داد و خونریزی عظیمی را برپا کرد و شکاف بزرگی را در بدنه اسلام به وجود آورد. در تاریخ منقول است که هفتاد نفر از محافظین بیتلمال در این نبرد به قتل رسیدند که در این میان گردن پنجاه نفر از این مسلمانان زده شد. سخران شما صحیح است ولی به هر صورت آیش بشر بوده و معصوم نبوده و از روی سادگی فریب دو نفر از صحابه را خورده ولی نهایتا توبه کرده اولا اقرار کردید که بزرگان صحابه خطاکار و فریکار بودند. و حالانکه که آن دو نفر تلهوز و ویر بودند که از حاضرین تحت شجره و به قول شما از اشره مبشره بودند پس خود به خود حدیث ادالت صحابه باطن شد ثانیان، پشیمانی و توبه آیشی یک ادای محض و باطل است، چون اگر او توبه کرده بود، دیگر نباید مرتکب خطاهای بعدی می شد. چه می دیگر چه خطاهایی از او سر زده؟ بعد از شهادت حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام، بنیهاشه می خواستن آن حضرت را کنار قبر جد متحرش دفن کنند، که با مخالفت آیشه رو برو شدند. آیشه؟ سوار بر قاطر شد و راه را بر جنازه گرفت. ابن عباس به او کرد و شعر جالبی را نوشت که خطاهای بزرگ آیشه را گوش زد می کرد و به زبان کنایه می گفت روزی سوار بر شطر به جنگ وسیع پیامبر می روی. و روز دیگر سوار بر قاطر جلوی جنازه نبی پیامبر را می و اگر زنده بمانی و جرعت داشته باشی سوار بر فیل هم می شوی و به جنگ خدا خواهیدن خواهش می کنم ادب را رعایت کنید من فقط گفته ابن عباس را ترجمه کردم با وجود این مطالب باز هم بعید نیست که ام المومنین در آخر عمر توبه کرده باشد دلایل کافی داریم که دختر ابوبکر حتی در اواخر عمر هم دست از دشمنی با علی بر نداشت. وقتی خبر شهادت امیرالمومنین را به این زن دادند، سجده شکر به جا آورد و گفت: از بابت علی آسوده خاطر شدم. من منتظر خبر مرگ علی بودم، مثل کسی که منتظر مسافرش باشد و با آمدن او چشمهایش روشن شود و قلبش آرام شود. پس تاریخ شهادت میدهد که این زن هیچگاه دست از چین توزی بر نداشت. حال بگوید آیا تکلیف کسی که فهش و ناسزا به خلیفه عثمان بگوید چیست؟ فهش و ناسزا به خلفا گناهی نبخشودنیست. ولی این موضوع چه ربطی به ما دارد؟ شما به ما انتقاد می کنید که چرا به افعال و کردار خلفا اعتراض می در حالی که بیش از ما و پیش از ما آیشه به خلیفه عثمان اعتراض می و میگفته این پیرمرد خرف را بکشید، خدا او را بکشد چون کافر شده. دشمنی آیشه نسبت به عثمان از همه بیشتر بود. او پیراهن رسول خدا را در منزل خود آویخته بود و به مردم می گفت هنوز پیراهن رسول خدا کهنه نشده ولی عثمان سنت پیامبر را کهنه کرده. با وجود دشمنی که آیشه نسبت به عثمان داشت پس از قتل عثمان و بیعت کردن امت با امیرالمومنین السلام عایشه موذیگیری جدیدی را در پیش گرفت. زمانی که جریان بیعت را شنید گفت اگر امر خلافت به علی برسد در حالی که عثمان مظلومانه به قدر رسید، آرزو دارم آسمان به زمین آید و جهان فانی شود. هنگام عزیمت به بسره وی به ملاقات ام سلمه رفت تا او را هم با خود ببرد. ولی ایشان در جوابش گفت دیروز به عثمان دشنام میدادی و او را سرزنش میکردی تو را چه شده که امروز قصد خونخواهی او را داری آیا فضایل علی را فراموش کردی اگر یادت رفته من یادت میآورم به یاد آوردان روزی را که در خدمت پیامبر بودیم که پدرت ابوبکر به همراه عمر به محضر رسول خدا شرفیاب شد و به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله ما قدر و منزلت مصاحبت با تو را نمی دانیم. ما را تعلیم دهید که چه کسی بعد از شما فرمان ماست. حضرت فرمود من مقام و مرتبه جانشین خود را می دانم ولی فعلا صلاح نمی دانم که او را معرفی کنم. چون از طرف وی متفرق می شبید. مثل بنی اسرائیل که از اطراف هارون متفرق شدند، پس از بیرون رفتن آن دو نفر من گفتم ای رسول خدا خلیفه شما چه کسی است فرمود آن کس که نعلین مرا پاردوزی دوزی می کند. از خدمت آن حضرت بیرون آمدیم و دیدیم که علی علیه السلام نعلین آن حضرت را پاره دوزی میکند آیشه گفت بله یادم هست ام سلمه گفت پس به کجا میروی گفت برای اصلاح امر امت به بصره میروم این حدیث علاوه بر اثبات خلافت بلافصل فصل امیرالمومنین نشان میدهد که آیشه عمدن این گناه عظیم را مرتکب شده مفاد این حدیث علاوه بر مطالبی که عرض کردم روش صحیح تعیین خلیفه را نیز معین می کند. پس ثابت میشود که روش تعیین خلفای راشدین که هر یک به شکل خاصی به قدرت رسیدند صحیح نیست و صحیح نبوده بی لطفی می فرمایی جنب باست. هیچ هیچگونه تفاوتی میان روش تعیین خلفای راشدین نبوده، تمام خلفا با اجماع مسلمانان به خلافت رسیدن روش تعین خلفا هر کدام متفاوت با دیگری است، اجماعی که مورد ادعای شماست در مورد هیچ یک از خلفا صورت نگرفته. حتی در همان اجماعی که به قول شما برای ابوبکر صورت پذیرفته هم بسیاری از بزرگان شرکت نداشتند. عمر بر اساس وصیت ابوبکر به خلافت دست یافت و در مورد او هیچ گونه اجماعی نقل نشده. خب چون خلیفه ابوبکر بر اساس اجماع امت تعیین شده بود، قول او می تواند بهترین سند برای تعیین خلیفه بعدی باشد. و دیگر نیازی به رأی گیری مجدد از مردم نیست. عشب. قول ابو بکر برای تعین خلیفه رسول خدا سند است. اما قول رسول خدا برای تعین خلیفه خودش سند نیست. بگذاریم. حالا اگر حکم ابو بکر برای تعین خلیفه بعدی کافی است. دیگر فلسفه این کاری که عمر برای تعین خلیفه بعد از خودش کرد چیست؟ عمر، برای تعیین خلیفه بعد از خودش شش نفر را معرفی کرد و ریاست شورا را بر اهده عبدالرحمن ابن اوف گذاشت و گفت نظر نهایی با عبدالرحمن است. او با هر که بیعت کرد دیگران هم باید بیعت کنند و اگر کسی رأی اکثریت را قبول نکند باید گردنش زده شود. انصاف دهید ای آیا خلیفه نمی که علی از پسر اوف بهتر است؟ چه معنا دارد که نظر عبدالرحمن با ارزشتر از نظر علی باشد؟ به چه دلیل اگر کسی از رأی اکثریت سرفیچی کند باید کشته شود؟ رسول خدا فرمود به زودی بعد از من فتنهی برپا می شود. در آن زمان بر شما لازم است که در رکاب علی باشید. چرا که او جدا کننده حق و باطل و او امیر مؤمنان است اگر اینطور که میگویید باشد خلافت علی هم باطل است چون همان افرادی که سه خلیفه قبل را به خلافت رساندند همانها هم علی را به خلافت منصوب کردند این فرمایش شما در صورتی صحیح است که ملاک خلافت امیر هم مثل ملاک های شما باشد اما از نظر شیعه اثبات خلافت فقط بر اساس نسل پیامبر خداست پس اقبال و اجماع امت هیچ گونه ارزش و اعتباری ندارد در خبر آمده که پیامبر فرمود ابوبکر خلیفه من است مثل اینکه قرارداد شب اول را فراموش کردید شیخ فیروز فیروزآبادی می‌نویسد آن چه در فضائل ابوبکر نقل شده از حرف‌هایی است که عقل سالم به دروغ بودن آنها گواهی میدهد. با توجه به مطالبی که عرض کردم اگر دلیل شما اجماع است پس در هیچ یک از کلفای این اجماع صورت نگرفته مگر از نظر شما ملاک فضیلت چه چیزی است ملاک فضیلت و برتری عبارت است از ایمان به خدا و رسول نسب پاک و علم و تقوا مرحبا حرف ما هم همین است چون امیرالمؤمنین علی علیه السلام از لحاظ حسب و نسب و علم و تقبا از همه بالاتر بوده و افضل از تمامی صحابه است. خب به چه دلیل علی را از لحاظ حسب و نسب برتر از دیگران میدانید؟ نسب علی از دو جنبه منحصر به فرد است. از جنبه خلقت نوری و از جنبه نسب جسمانی بزرگان علمای خودتان از رسول خدا نقل کردند من و علی چهارده هزار سال قبل از خلقت آدم به صورت نوری بودیم در ید قدرت الهی هنگامی که خداوند متعال آدم را خلق کرد ما را در سلب آدم قرار داد پیوسته با هم بودیم تا در صلب عبدالمطلب از هم جدا شدیم پس نبوت را در من و خلافت را در علی ظاهر ساخت. اما از لحاظ جسمانی این خصوصیت عظیم در آن حضرت و هم در رسول خدا وجود دارد که تمام آبا و اجداد آن حضرت تا آدم عبالبشر همه گی مبخد و خدا پرست بودند و در صلب و رحم ناپاک قرار نگرفتند. ای آقا فکر می کنم این مطلبی که فرمودید اشتباه باشد. چون قرآن آذر پدر ابراهیم خلیل را کافر و مشرک معرفی کرده خیر مطلبی که میگویید اشتباه نیست چون بر طبق نظر علما پدر حضرت خلیل رحمان تارخ بوده نه آذر چرا نظر علمای انصاب را در مقابل نص سریع قرآن قرار میدهید قرآن پدر حضرت ابراهیم را آذر میداند نه تارخ ما هیچ وقت در مقابل نس اجتهاد نمی کنیم بلکه طبق راهنمایی خواندان رسول خدا به نکات زریفی از قرآن پی می بریم که افراد محروم از راهنمایی های ایشان متوجه نکات نمی شبند. در عرف عرب به امو و شوهر مادر نیز گاهی تعبیر به ابن می شود در آذر دو قول است یکی آنکه وی برادر تارخ یعنی عموی ابراهیم بوده و دیگر که بعد از وفات تارخ آذر با مادر ابراهیم ازدواج کرده پس ابراهیم به وی پدر میگفته. آیا در جای دیگری از قرآن دیده شده که از عمو یا شوهر مادر تعبیر به پدر شود بله در آیه 133 سوره بقره آمده حضرت یعقوب به فرزندان خود گفت پس از مرگ من چه کسی را می گفتند خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم اسمایل و اسحاق شاهد من از این آیه اطلاق نام پدر به جناب اسماعیل است در حالی که اسماعیل عموی یعقوب بوده نه پدر به بنا بر دلایل قطعی تاریخی پدر ابراهیم جناب تارخ بوده تارخ موحد و خداپرست بوده پس تمام اجداد رسول خدا و علی و پاک بودند اگر راه حلی هم درباره پدر ابراهیم درست کنید دیگر راجب ابوطالب هیچ کاری نمی توانید بکنید چون مسلما ابوطالب در حالت کفر از دنیا رفته خداوند لعنت کند کسانی را که به خاطر دشمنی با علی به حضرت ابوطالب نسبت ناروا دادند و به آن حضرت تهمت کفر زدند طبق نظر خاندان رسالت حضرت ابو طالب بوده و با ایمان از دنیا رهلت کرده. ابن عصیر می از اموهای پیامبر غیر از همزه و عباس و عبو طالب کس دیگری به پیامبر ایمان نیاورد. عقیده اده دیگری از علمای شما بر این است که ابو طالب اسلام آورد اما به دلیل اینکه از قدرت خود برای یاری پیامبر استفاده کند ایمان خود را علنی نکرد. و به همین دلیل بود که مخالفان مزاحم رسول خدا نمی شدند. مگر شما حدیث زهزاه را نشنیده دهید که عبو طالب در زهزاهی از آتش هست؟ ناقل این حدیث مسخره یک فرد فاسق و زانی و شارب الخمر بوده که به دلیل دشمنی با علی و خوش آمد این حدیث را ساخته. ما دلایل بسیاری بر اثبات ایمان حضرت ابوطالب طالب داریم. از این دلایل یکی اشعار آن جناب است که در مدح رسول خدا سروده و در آنها صریحا میگوید من بر دین محمد هستم و پیغمبر حقی را یاری میکنم که هیچگاه باطل در کلام او راه ندارد علمای شما این اشعار را نقد کرده و ثبت نمودند اگر جناب ابو طالب مشرک و بت بود باید همان روز اول که نبوت رسول خدا علنی میشد آن حضرت را منع میکرد نه اینکه مشوق او باشد و به ایشان عرض کند امر خودت را آشکار کن به خدا سوگند هیچکس تو را آزار نمی رساند. مگر اینکه زبانهای تند و شمشیرهای تیز ما را رو به روی خود ببیند به خدا قسم عرب در مقابل تو به زانو در خواهد آمد دین تو بهترین ادیان است. عجیب است که شما برای اثبات ایمان افراد پلیدی مثل ابو سفیان ملعون، معاویه لعین و یزید جنایتکار که مسلما کافر و بی ایمان بودند دلیلی طلب نمی کنید و آنها را مؤمن می دانید. اما برای ایمان ابوطالب با وجود این همه دلیل و برهان باز هم سرسختی میکنید و ایشان را مشرک میخوانید آیا این کار شما درست است که مرتبا خال المؤمنین معاویه را لعن می میکنید دلیل شما بر کفر معاویه و یزید که از خلفای بزرگ اسلام هستند چیست خال المؤمنین بودن معاویه روی چه ملاکی چون خواهر معاویه زوجه رسول خدا و ام المؤمنین بوده پس معاویه برادر مادر مؤمنان یعنی داوی مؤمنان است آیا عایشه ام المؤمنین نبوده اگر چنین است پس چرا به محمد ابن ابوبکر خال المؤمنین نمی گویید اجازه دهید جوابش را خودم بدهم چون محمد از شیعیان خالص بود و به دست معاویه به شهادت رسید. و اما اینکه فرمودید معاویه کاتب وحی بوده هم غلط است. چون وقتی او مسلمان شد دیگر دوران وحی تقریبا به سر آمده بود. آنچه در مورد او آمده است این است که وی کاتب نامه ها بوده و اما در مورد کفر آنها اله الله دلیل و برغان داریم. تقاضا دارم کمی از این دلایل را برای ما بگوید. بر طبق نقل اکثر مفسرین در عالم رؤیا به رسول خدا نشان داده شد که بنی امیه به مانند بوزینگان بر فراز منبر آن حضرت بالا می روند. علاوه بر این خداوند متعال نیز در سوره اسراء از این خاندان به عنوان شجره ملعونه یاد می کند. در جای دیگر خداوند متعال می فرماید آنان که خدا و رسول او را آزار دهند، خداوند آنان را در دنیا و آخرت لعنت نموده و برای آنها عذاب خار کننده مهیا فرموده است. استدعا دارم صفحات تاریخ را کمی ورق بزنید تا ببینید که این خاندان چگونه زمینه آزار و اذیت رسول خدا و اهل بیتش را فراهم آورده‌اند. در آیه دیگر چنین آمده هر که عمدن مؤمنی را به قتل برساند مجازات او آتش جهنم خواهد بود و خدا بر او خشم می‌گیرد و او را لعنت می‌کند و عذابی بزرگ برایش مهیا ساخته است. آیا نمی‌دانید که معاویه مؤمنان زیادی همچون امام حسن مشتبه، ثبت رسول خدا و سید جوانان اهل بهشت را و نیز بسیاری از صحابه بزرگوار رسول خدا از جمله حضر بن عدی را به قتل رسانی؟ آیا نمی دانید که این فرد ملعون بسر ابن ارتات بیرحم و خونخوار را به سوی مکه و مدینه فرستاد تا شیعیان علی ابیطالب طالب را سرکوب کند و به نقل مبرخین بیش از سی هزار نفر از زن و بچه را به خاک و خون کشید؟ آیا در کتابهای شما نقل نشده که رسول اکرم فرمود هر که به علی ناسزا گوید مثل آن است که به من ناسزا گفته؟ و هر که مرا سب و شتم کند مثل آن است که خدا را سب و شتم کرده و در جای دیگر می‌فرماید هر کس که به اهل بیت من دشمنام دهد جز این نیست که از دین خدا و اسلام مرتد شده و کسی که اطرت مرا آزار دهد پس لعنت خدا بر او باد ماویه علنا حضرت علی را لعنت می کرد و مردم را هم به این گناه عظیم دستور می داد و هر که از این دستور سرفی چی می کرد را شکنجه می داد و یا به قتل می رسند. آیا چون این کسی مورد لعنت خدا و پیامبر نیست؟ رسول خدا فرمود علی را دوست نمی دارد الا مؤمنین و او را دشمن نمی دارد الا کافران؟ آیا دشمن درجه که علی کسی جز معاویه است؟ به شهادت تاریخ معاویه دشمن علیس پس کافر و مستحق عذاب خار کننده شگونه جرعت می به خال المومنین احانت کنید در حالی که وی از صحابه بزرگوار رسول خداست و خداوند در مده از رسول اکرم آیات زیادی نازل فرموده اشتباه شما و همفکرانتان این است که صحابی بودن را به خودی خود یک ارزش فوق می در حالی که آیات و روایات برخلاف نظر شما حکم می در قرآن کریم خداوند متعال خطاب به مشرکان می‌فرماید: صاحب شما هیچگاه در زلالت و گمراهی نبوده. منظور از صاحب مشرکان پیامبر خداست. همچنین در سوره کف آمده آن مرد کافر به مصاحب و رفیقش که فردی مؤمن و فقیر بود در مقام گفتگو و مفاخرت برآمد. و در سوره یوسف دو فرد کافری که با حضرت یوسف در زندان به سر می را صاحبان یوسف نام برده. پس ممکن است مصاحب و اصحاب یک پیامبر حتی کافر مشرک باشند. من نمی دانم چرا شما با نگاه خوشبینانه به تمامی اصحاب نگاه می کنید. در حالی که در بین آنها افراد منافق و بدکار هم وجود داشته، ما ممکن نزول آیات مده در شعن صحابه نیستیم ولی این را هم نمیپذیریم پذیریم که این آیات در شعن همه صحابه باشد. آیات زیادی را می شناسیم که در مذمت بدکاران از صحابه نازل شده. شما با این نگاه متناقض گرفتار سردرگمی شدید که یکی از آنها توجیه کارهای مرد پلیدی همچون معاویه است که به شهادت تاریخ فسادهای بزرگی را پدید آورد عجیب است. چگونه به اصحاب رسول خدا نسبت فساد می دهید و آنها را بد کردار می نامید؟ بخاری می رسول خدا فرمود در روز قیامت من کنار حوض کوسر به انتظار شما هستم. به خداوند متعال عرض می کنم پروردگارا اصحاب من کجایند؟ خطاب می رسد تو نمیدانی که بعد از تو آنان چه ها کردند و چه اموری را در دین ساختند؟ من برای شما بسیار متاسفم که از یک طرف یک چونین فرد ملحد و فرزند کافر و پلیدش را مسلمان می‌خوانید و از سوی دیگر تلاش می‌کنید کفر جناب ابو طالب را ثابت کنید. اسناد و دلایل بسیاری برای کفر معاویه و یزید و هم بر ایمان ابو طالب در کتابهای خودتان وجود دارد. اما چه کنیم که شما نمی‌خواهید زیر بار در زمان رسول خدا اسلام ابو طالب شهرت داشته اخری بله کاملا تمام امت نام ابو طالب را به عظمت یاد میکردند چگونه ممکن است در زمان رسول خدا امری شایع و مشهور بوده باشد و بعد از 30 سال دقیقاً بر خلاف آن شایع شود تنها این مطلب نبوده که بعد از سی سال واژگون شده بلکه بسیاری از امور حتی احکام دینی هم این بلا به سرش آمده است ممکن است از آن امور نمونه ای را برای ما بیان کنید. هر تعداد نمونه که بخواهید خواهید خدمتتان عرض میکنم. برای نمونه مسئله ای را می میکنم که با دلایل قرآنی و روایات قطعی و مورد قبول شما در زمان رسول خدا رایج بوده و بعداً ممنوع شد. ازدواج موقت و حج تمتع نسا در زمان رسول خدا و حتی در دوره خلافت ابوبکر و قسمتی از زمان خلافت عمر شایع و رایج بود. عمر در دوران حکومت خود گفت من این دو متعه که در زمان پیامبر حلال بود را حرام می کنم و عاملان به آن را مجازات. با این حرف بی پایه و بی اساس حلال خدا حرام شد. و سنت رایج نببی واژگون در حال حاضر هم اهل تصنون برخلاف سنت رسول خدا از این احکام الهی روی گردانیدند. آیا میلیون ها انسان خالص برخلاف قرآن و سنت رسول خدا عمل می کنند؟ در حالی که مردم ما را سنی و تابع سنت می ولی شما را رافزی یعنی روی گردان از سنت نامیدند؟ این نامگذاری را خودتان مرتکب شده اید آن است که ما سنی هستیم چرا که به سنت واقعی رسول خدا عمل می کنیم و شما رافضی هستید چون از سنت سرپیچی کردید احسند احسند بر طبق کدام ملاک شرعی به خود این اجازه را می که میلیون ها مسلمان پاک را رافضی بنامید. نامید به همان دلیل که شما ما را رافضی می خانید. با این تفاوت که دلیل ما بر اساس آیات و روایات است در حالی که دلایل شما فقط از روی تعصب است در شبهای قبل اشاره کردم که رسول خدا تمام امت را به تبعیت از قرآن و اسرت امر فرمود آیا کسی جز ما به این دستور عمل کرد رسول اکرم تمام امت را به اطاعت از علی فرمان داد آیا کسی جز ما به این فرمان عمل کرد رسول الله متعه را جزء سنت خود اعلام نمود آیا کسی جز ما به این سنت عمل کرد؟ و اما از دیگر آیا کسی جز شما از اطاعت پیامبر در خصوص طبعیت از اطرت آن حضرت سرپیچی کرد؟ آیا کسی جز شما از اطاعت پیامبر در خصوص هلیت متعه روی گرداند؟ دلیل شما بر حلال بودن متعه چیست؟ در آیه 24 سوره نساس سریحاً آمده، پس از اینکه از آنها مند شدید، مهر تعیین شده را که از آنان است، به ایشان بپردازید. از کجا معلوم که این آیه در مورد عقد دائم نباشد؟ در کتب معتبر خودتان از قول یکی از اصحاب نقل شده، آیه مطعه نازل شد و ما در زمان رسول خدا به آن عمل می کردیم و آیه هم بر حرمت آن نازل نشد. و رسول خدا هم تا زمان مرگ ما را از انجام آن نهی نکردند. نه اما عمر رأی خودش هرچی خواست گفت و فرمان داد. حمیدی در جمع بین سحیحین از عبدالله ابن عباس روایت کرده در زمان رسول خدا می میکردیم تا اینکه عمر به خلافت رسید و گفت از متعه بپرهیزید که اگر کسی چنین کند او را سنگسار سار میکنم. شاید این آیه بعدا منسوخ شده باشه. گفته خود عمر حاکی از آن است که چنین نبوده اگر بنا باشد یک آیه از قرآن نسخ شود باید به وسیله یک آیه دیگر این کار صورت گیرد نه توسط عمر در سوره مؤمنون هلیت زن برای مرد منحصر در زوجیت و ملکیت یمین اعلام شده و نه چیز دیگر این آیه میتواند ناسخ آیه متع داد شود از نظر اسلام متعه هم یک نوع زوجیت است آیا نمی‌دانید که سوره مؤمنون قبل از سوره نسا نازل شده و نمی‌تواند ناسخ آن باشد روایاتی وجود دارد که می‌گوید حکم متعه در زمان پیامبر نسخ شده اولا این روایت از نظر ما فاقد اعتبار است سانیان این را بدانید که اگر این حکم نسخ شده بود خلیفه به گونه دیگر سخن می‌گفت آیا حرف شما را بپذیریم یا قول امام احمد ابن را که از قول فردی از صحابه نقل می کند که آیه متعه در قرآن مجید نازل شد و ما به عمل می کردیم و هیچ ای که حکم متعه را نسخ کند نازل نشد و پیامبر هم از آن نهی نفر پس قطعا شما برای حرمت متعه هیچ دلیلی ندارید مگر قول عمر. قول عمر خود سند است. از شما بعید است، دلیل شما بر سندیت قول خلیفتان چیستان؟ اگر عمر حکم نسخ را از پیامبر نشنیده بود، متعرض چون این کاری نمیشد. اشتباه شما در همین حدسیات و گمانهای خوشبینانه و بیاساس است. اگر حکم مدعه سال قبل از عمر منسوخ شده بود، پس دیگر نیازی به تحریم عمر نبود. مسلما این حکم نسخ نشده بود و به عنوان یک حکم الهی در میان مردم رایج بود تا اینکه عمر این, این جرأت و جسارت را در خود دید که حکم الهی را نادیده بگیرد و حلال خدا را حرام کند لا بو جناب علی که یک مجتهد میتواند ری مجتهد دیگر را نقص کند عمر که خود مجتهد بود حکم پیامبر که یک مجتهد دیگر بود را نقض کرد کجای این دلیل اشکال دارد؟ سراپای این دلیل پر از اشکال است. چه کسی گفته که حتی مشتهد معصومی مثل پیامبر اکرم حق نقض حکم قطعی خدا را دارد تا چه رسد به یک انسان جایز خطا؟ عمر سلاح مملکت را در این دید که متعه را تحریم کند، چون در جهان امروز هم دیده می شود که برخی افراد، برای کامجویی یک ساعت زنی مسلمان را متعه می کنند و بعد او را رها می کنند و موجب اشاعه فهر شاه با این حرفا نمی توان حلال خدا را حرام کرد و کار امر را توجیه نمود. اگر عمل یک اده افراد لاابالی سبب حرام شدن حلال خدا می شود پس باید عقد دائم هم حرام شود. مگر از این جهت چه تفاوتی میان عقد دائم و عقد موقت است؟ جناب سلطان الواعزی، قبول ندارید که حکم مطعه باعث گسترش فحشا می‌شود؟ به هیچ وجه. به نظر من اگر این حکم شرعی در جوامع مسلمانان رایج بود، زمینه‌های فساد و فحشا به شدت کم میشد. جوانی که قدرت تأمین هزینه‌های ازدواج دائم را ندارد و شدیداً تحت فشار قریزی جنسی است، در مکتب شما چه باید بکند شما هیچ راه قانونی و شرعی برای حل این مشکل طبیعی و رایج ندارید در حالی که مذهب جامع و متین ما برای حل این معزل حکم ازدواج موقت را پیشنهاد کرده پافشاری یک مکتب بر تحریم شدید زنا تنها با بر شناختن ازدواج موقت اوغلایی است در غیر این صورت باید گفت که این مکتب در مواجهه با یک پدیدهی طبیعی و فراگیر دوچار تناقض و بنبست بدی شده. به قول امیر علی علیه السلام اگر عمر مطعه را نهی نمی کرد جز ادهی قلیل هیچ مسلمانی مرتکب فحشا نمیشد. از این مطلب می گذارم و به اصل مطلب که درباره فضای فضایل بود می پردازم. یکی دیگر از خصوصیت خاص امام مؤمنان محل تولد ایشان است اگر به همین یک مسئله دقیق شوید راه را خواهید یافت. نکته دیگر که از امتیازات آن بزرگ است نامگذاری ایشان از عالم قید است. سخن عجیب میگوید. مگر ابوطالب پیغمبر بوده که به وی شود خیر اما نام محمد و علی هزاران سال قبل از خلقت آدم در تمام آسمانها و ابواب جنت و عرش اعظم ثبت بوده آیا این سخن شما غلو نیست که علی را هم ردیف با پیامبر میکنید همین حرف هاست که باعث شده فقهای شما فتوا به واجب بودن شهادت به ولایت علی در ازان و اقامه دهند. اولا من نام مبارک علی را هم ردیف با نام پیامبر قرار ندادم، بلکه خداوند چنین کرده. ثانیاً از رسول خدا نقل شده است که از دو هزار سال پیش از خلقت آسمان ها و زمین بر در بهشت نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله، علی ولی الله و اخو رسول الله و نیز از رسول اکرم نقل می کنند در شب معراج وقتی به عرش رب العالمین رسیدم بر پایه آن دیدم که نوشته شده به راستی که من خدایی هستم که غیر از من خدایی نیست محمد حبیب من است که او را به علی وزیر او تایید و یاری نمودم همچنین از ابن عباس رسیده که از رسول خدا سبب قبولی توبه آدم را جویا شدم، ایشان فرمود آدم خدا را به حق من و علی و فاطمه و حسن و حسین قسم داد، پس خداوند توبه او را پذیرفت و او را آمرزید، و اما اینکه فرمودید مگر ابو طالب پیامبر بوده که به او وح شود، بیمورد است، چون به مادر موسی و زنبور اصل هم وحی شده در حال که ایچ کدام پیانبر نبودند. آیا خبری در این زمینه در کتاب‌های ما موجود است؟ علمای شما از عباس بن عبد المطلب نقل کردند. هنگامی که علی متولد شد جناب ابوطالب و فاطمه بنت اسد به کوه ابو رفتند و از خداوند متعال نامگذاری طفلشان را خواستند، ناگهان صدایی از آسمان بلند شد و لوحی سبز رنگ به دست ابو طالب كه که در آن اشعاری نوشته شده بود. مضمون این اشعاران است که شما را به فرزند پاک و پاکیزهی که منتخب من است اختصاص دادن. اسم او را از جانب خدای اعلا علی بگذار که مشتق از اسم علی اعلا پس ابو طالب به سجده افتاد و به شکرانه این نعمت عظیم، ده شتر قربانی کرد اما اینکه فرمودید بنا به فتوای فقهای شیعه ذکر نام علی در اذان و اقامه واجب است حاکی از عدم اطلاع شماست تمامی فقهای ما میگویند که شهادت بر ولایت امیرالمومنین جزء اذان و اقامه نیست لاکن مستحب و بسیار مطلوب است از این مقوله هم بگذریم و برگردیم بر سر مطلب که ذکر فضائل علی علیه السلام فضیلت دیگر آن حضرت شدت زهد و تقوای آن وجود مبارک است به قدری آن سرور در این زمین دروت بود که دشمن درجه یک ایشان یعنی معاویه ملعون گفته زنان عالم از اینکه مثل علی را بزایند عقیمند حال اگر اجازه بفرمایید از حضورتان سؤالی سوالی داشته باشم استدعا میکنم بفرمایید آیا با این اوصاف شما احتمال خوا و جاه را در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام میدهید ابدان علی کرم و وجهو کسی است که دنیا را ستلاقه کرد پس چه دلیلی داشت که ایشان راضی به خلافت ابوبکر نشد و تا شش ماه از بیعت با او امتناع کرد اگر احتمال هواپرستی در مورد علی روانی است پس چرا ایشان زیر بار حکومت ابوبکر نرفت از این متعجبم که میگویید علی راضی به خلافت ابوبکر نبوده همه علمای ما گفتند که ایشان با کمال رضایت دست بیعت به خلیفہ ابوبکر داد تعجب نکنید گویا هرچی را در جلسات قبل گفتم از یاد بردید علمای خودتان به این حقیقت اعتراف کردند که علی بعد از شش ماه اجوارن با ابوبکر بیت کرد. در این صورت حتما یک جهتی داشته. خودشان در آن موقع بهتر می دانستند که چه میکنند؟ به ما چه مربوط که در امر بزرگان و اختلاف آنها بعد از 1300 سال دخالت کنیم. عجب هر فرد مسلمانی مکلف است که با تحقیق و بررسی، راه حقیقت را پیدا کند و از آن پیروبی نماید. بعد از وفات رسول خدا صحابه به دو فرق تقسیم شدند که مسلمن فقط یکی از آنها میتوانست به حق باشد. پس چاره جز بررسی این جریانات نداریم. یعنی خلافت ابو بک حق نبوده؟ با توجه به شجاعت بینظیر علی، پس باید قیام میکرد، نه اینکه بیعت کند و به نماز ایشان حاضر شود. اولاً بر طبق عقیده شیعه، انبیا و اوسیا مطابق دستورات الهی عمل میکردند. اگر در موردی جنگ کردن، مطابق حق بوده و چنانچه در موزه دیگر صلح را انتخاب اند باز هم مطابق حق و طبق دستور پربردگار بوده. امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه به مردم مصر می نویسد شوگن به پروردگار باور نمی کردم که عرب بعد از رسول خدا امر خلافت را از اهل بیت او برگردانده و به دیگری به سفارت. آن چیزی که باعث رنجش من شد اقبال مردم به ابو بود. مردم با وی بیعت کردند اما من دست خود را از بیعت باز داشتم تا زمانی که دیدم گروهی از مردم از دین محمد برگشته و در صدد تخریب آن هستند. پس برای یاری اسلام به پا خواستم چرا که مصیبت شکاف در دین اسلام برای من از مصیبت فوت ولایت و حکومت بر شما که همچون سرابی زائل است بزرگتر و عظیمتر است با توجه به همین نامه روشن می شود که سکوت و تسلیم آن حضرت ناشی از رضایت ایشان از حکومت آن دو نبوده بلکه نگرانی از زبال دین و تفرقه امت اسلام او را مجبور به این عمل کرد. در تاریخ میبینیم آن حضرت پس از گذشت شش ماه از وفات رسول خدا و بعد از اینکه بارها و با بارها مخالفت خود را در غالب احتجاج به گوش مردم رساند مجبور به بیعت با ابوبکر شد. و نقل تاریخ انگامی که آن حضرت را به زور به مسجد می بردند و شمشیر برهنه را بالای سر او نگه داشته و او را مجبور به بیعت می رو به قبر شریف پیامبر اکلم کرده و همان کلماتی که هارون خطاب به برادرش حضرت موسی گفت را به رسول خدا عرضه داشت که ای رسول خدا این امت مرا تنها گذاشته و ضعیف کردند و میخواهند مرا به قتل برسانند. این جریان را رسول خدا پیش بینی فرموده بود آن حضرت به امیرالمومنین فرمود یا علی امت از تو کینه ها در دل دارند و زود است که بعد از من با تو از در خود و نیرنگ وارد چوند و آنچه در دل دارند را بیرون بریزند تو را امر به صبر و تحمل می کنم تا خداوند تو را جزای خیر عنایت با توجه به این مطلب واضح است که امیرالمؤمنین ریاست و حکومت را هم برای خدا میخواستیم پس اگر صلاح دین خدا در رها کردن حکومت است او این کار را می کند و اگر صلاح دین در تصدی حکومت است باز هم چنین کند. آن حضرت در خطبهٔ شقشقیه میفرماید سوگند به خداوند که پسر عبیق خلافت را مانند پیراهنی به تن کرد و حالان که او میدانست جایگاه من برای این امر مثل قطب و محور آسیا است. علوم و معارف از ترچشمه فیض من مانند سیل سرازیر می شود و هیچ پرندهی در فضای علم دانش به اوج رفعت من نمی رسد. با وجود این، من جامعه خلافت را رها کردم و به این فکر فرو رفتم که آیا دست به شمشیر ببرم و حق خود را بگیرم یا راه صبر و بردباری را برگزینم و بر این تاریکی کور صبر کنم؟ پس یافتم که صبر کردن خردمندی است. میراس خود را به تاراج رفته می دیدم تا اینکه اولی راه خود را به انتها برد و خلافت را به آغوش دومی افکند. این خطبه مربوط به حضرت علی نیست، از سید رضی است، و اله آنجناب هیچ شکایتی از خلفا نداشت. بزرگان از علمای خودتان اقرار دارند که این طرز بیان منحصر به امیر مومنان است. جمع کثیری از اهل علم و ادب قبل از ولادت سید رزی این خطبه را روایت کردند. ابن ابی هدید به نقل از ابن خشاب می این خطبه را در کتابی که تاریخ نوشتن و تعلیف آن دویز سال، قبل از ولادت رزیست دیدم علاوه بر این دلایل دلتنگی و ناراحتی امیرالمومنین علی علیه السلام از دو خلیفه منحصر به این خطبه نیست بلکه در سایر خطبه و کلمات ایشان نیز ثبت و ضبط است از آن حضرت نقل شده قسم به آن خدایی که غیر از او خدایی نیست به درستی که من در شاهراه حق هستم و مخالفان من در پردگاه سقوط قرار دارند <تصفح> چون زمان گذشته است اگر صلاح می‌دانید بقیه صحبت‌ها به فردا شب مکن شود بفرمایید <تصفح> و بدین ترتیب مجلس شب نهم هم به پایان رسید و هزار به امید شنیدن سخنان علمای شیعه و علمای اهل سنت و مناظره آنان در شب پایانی جلبس را ترک کرد